اثر سر جوجو مایز ترجمه مریم مفتاهی با صدای مریم پاکزاد و گروهی از گویندگان بازیگردان آرمان سلطانزاده کاری از گروه فرهنگی، آوانامی با همکاری نشر آموز فصل اول سال 2007 وقتی از همان بیرون می آید زن هم بیدار شده است به بالش تکیه داده. و کتابچه راهنمای مسافرت کنار تخت خوابش را ورق می‌زند. یکی از بلوزهای مرد را پوشیده و موهای بلندش طوری به هم ریخته که ناخداگاه شب گذشته را به ذهن می‌آورد. مرد همانجا می ایستد و با حوله موهایش را خشک می‌کند. سرخوش از یادآوری خاطرات است. زن سرش را از کتابچه بلند می‌کند. و لب برمی چیند. شاید سنش برای این کار کمی زیاد باشد. ولی مدت نچندان طولانی آشنایی این فرصت را به زن خود را کمی لوس کند. حتما باید کاری انجام بدی که به کونه مربوط یا حتما باید بری توی درائه تنگ و باریک بچرخی اولین تعطیلات درست و واقعا کدوم مسافرت که هم میتونی از شر لباس و هم؟ وانمود میکند چندشش شده است بعد ادامه میدهد شم پشم گوزفم بپوشی کتابچه را پایین تخت خواب میاندازد و دستهای کاراملی رنگش را زیر سر میگذارد از صدای خشدارش پیداست ساعتی از شب گذشته را بیداری کشیده است چشمه های لکس تو بالی چطوره؟ میتونیم روی دراز بکشیم حسابی از ما پذیرایشه شبای طولانی و آروم از اینجور تعطیلات خوشم نمیاد حتما باید کاری بکنم مثلا خودتو از هواپیما بندزی بندازی بیرون؟ تا امتحان نکردی علکی ردش نکن زن چهره در هم می کشد هگه از نظرت اشکاری نداره ترجمه می‌دم ردش کنم رطوبت بدن مرد بلوزش را نمناک کرده است موهایش را شانه میزند و گوشی تلفن همراهش را روشن می کند. با دیدن تعداد پیام ها که پشت سر هم در صفحه کوچک گوشی به حرکت در می آیند، قیافش در هم میرود میگوید می, می گوید. خب حالا پشو صبحانه بخور. روی تخت خواب خم می شود و زن را می بوسد. زن گرما و راهیح بدنش را حس می کند. باز آخر هفته میری بستگی به این معامله دارم. کمی به هوای امروز شاید مجبور شدم برم نیویورک. در هر صورت پنجشنبه میریم رستوران یه شام خوب میخوریم. انتخاب رستوران با تو لباس چرمی مطرسواریش را از پشت در بر می دارد. زن چشمانش را تنگ می کند شام با آقای یا بدون اون؟ <تصفيق> چطور؟ آقای بلکبری باعث میشه احساس کنم سرخرم زن دوباره لب بر می چیند. <تصفيق> همیشه فکر می کنم یه نفر سومی است که می توجه تو جلب کنه زنگش رو قطع می زن با آقا تلخی می گوید ویل ترینر باید خاموشش کنی دیشب خاموش کردم نکردم زورکی مرد لبخن میزند. <تصفح> حالا میگی زورکی پاهایش را داخل لباس چرمی میکند و آن را بالا میکشد. بالاخره توجه مرد از لیسا منحرف میشود. کاپشن موتور سواری را روی دست میاندازد و همینطور که از اتاق خارج می شود برای زن بوس میفرستد. بیست و دو پیام در گوشی تلفن همراه بلکبری خود دارد. اولین پیام ساعت 3:42 دقیقه صبح از نیویورک رسیده. مشکل قانونی پیش آمده است. سوار و آسانسور می شود تا به پارکینگ در زیر زمین برود. تلاش می کند در جریان آخرین اخبار شب گذشته قرار بگیرد. صبح بخیر آقای ترینر نگهبان از اتاقکش بیرون میآید. با وجودی که زیرزمین از جریان باد و باران در امان است، اتاقک از نوع ضد باد و باران ساخته شده. ویل دوست دارد بداند این مرد اول صبح اینجا توی زیرزمین وقتی به تلویزیون مدار بسته، و سپر براغ اتومبیل های شست هزار پوندیزول میزند به چه فکر می کند؟ ویل دستش را داخل کاپشن می کند مایک، هوای بیرون چطوره؟ افتضاح چنان بارون میاد که انگار سخف آسمون پاره شده ویل می زدد. واقعا؟ با موتور نمی مایک سری تکان می دهد نهغروان مگه اینکه قایق بادی وصل کنید یا غصد خودکشی داشته باشید ویل به موتوررسیکل تشخیره می شود لباس چرمی را در میآورد مهم نیست لیسا چه فکری می کند. ولی او کسی نیست که بیگودار به آب بزند و خودش را بیجهت به خطر بیاندازد. جعبه روی موتور را باز می کند و لباس چرمی را داخلش میگذارد دوباره درش را قفل می کند و کلید را به طرف مایک پرت می کند. مایک هم آن را با یک دست در هوا می گیرد. از زیر در آپارتمانم به داخل اشکالی نداره؟ نه مشکلی نیست می تاکسی بگیرم؟ نه اون وقت هر دو خیست میشیم مایک دکمه میلی ایست را می زند و ویل خارج می شود. ویل دستش را بالا می برد و تشکر می کند صبح زوده است و هوا تاریک و توفانی ترافیک های مرکز لندن با اینکه هنوز ساعت هفت و نیم نشده سنگین و کند است یقهاش را بالا میدهد و در خیابان قدم میگذارد و به طرف تقاطع می‌رود تا تاکسی بگیرد خیابان از باران لغزنده است پیاده رو مثل آینه شده و نور خاکستری بر آن میدرخشد وقتی افراد دیگری را می بینند که روی لبه جدول خیابان ایستاده اند در دل فوش می دهد. مردم لندن از که اینقدر سهرخیز شده اند. انگار همه یک فکر دارند. نمیداند کجا به ایستد تا راحت تر تاکسی گیرش بیاید. همان موقع تلفن زنگ می زند. روپرت است. دارم میام الان منتظر تاکسی هم. از آن طرف خیابان، نور نارنجی یک تاکسی را میبیند که نزدیک میشود. قدمی به جلو برمیدارد. امیدوار از کسی متوجه آن نشده باشد. اتوبوسی رد میشود. پشت سرش هم کامیونی که ترمزهایش چنان صدا میدهند که صدای روپرت را نمیشنود. از سر و صدای اوتوموبیل ها مجبور میشود فریاد بزنند. روپ! صدا تو نمیشندم! دوباره بگو! حالا خودش تنها در جای امنی ایستاده است و اتومبیل ها سریع از کنارش عبور می کنند. نور نارنجی تاکسی را می بیند و دست آزادش را بالا می برد. کاش در آن باران سیلاسا راننده او را ببیند. باید به جفت و یورک زنگ بزنی. هنوز اونجاست. منتظر توه. دیشاب خیلی تلاش کردیم با تو تماس بگیریم. چه مشکلی پیش اومده؟ اشکال قانونی با دو بندش مشکل دارن امضاهای اون اوراق لعنتی کار دستمون داده در همان لحظه اتومبیلی رد می‌شود و صدای روپرت دیگر به گوش نمی‌رسد لاستیک اتومبیل با ریزش باران ویج صدا می‌کند نفهمیدم چی گفتی راننده تاکسی او را دیده است سرعتش را کم می‌کند و همینطور که از طرف دیگر خیابان آهسته می‌آید آب زیادی به اطراف پاشیده می شود. ویل متوجه مردی می شود که با دیدن او با دلخوری تمام قدم های تندش را آهسته می کند. حتما فهمیده است ویل زودتر به تاکسی می رسد. ویل یک جورهای احساس پیروزی می کند. با صدای بلند می گوید ببین کارهایی دفتری روی میز و به کلی بده. من تا ده دقیقه دیگه میرسم. به دو طرف خیابان نگاه می کند بعد سرش را پایین می اندازد و دوان دوان آخرین قدم هایش را به طرف تاکسی برمیدارد می دارد کلمه بلک فرایر سر زبانش است باران از لای یقه وارد پیراهنش می شود همین مسافت کوتاه پیاده رفتن در خیابان قطعاً باعث می شود مثل موش آب کشیده به دفتر کارش برسد شاید مجبور شود مانشی را بفرستد تا برایش پیراهن بیاورد باید قبل از رسیدن مارتین تلاش لازمو بکنیم. صدای گوش خراشی می آید. ویل نگاه می کند. صدای ناخوشایند بوق اتومبیلی تاکسی سیاه برراغ را مقابلش می بیند. راننده شیشه اتومبیل را پایین داده است. در گوشه میدان دیدش چیزی می بیند که نمیتواند به خوبی تشخیص دهد. آن چیز با سرعت باور نکردنی به طرفش میآید. صورتش را به طرف آن برمیگرداند بلافاصله متوجه می‌شود در مسیرش قرار دارد و به هیچ طریقی نمی‌تواند خودش را از سر راهش کنار بکشد از وحشت دستش باز می‌شود گوشی بلکبری رها می‌شود و میافتد زمین فریادی میشنود که احتمالا از گلوی خودش خارج شده است آخرین چیزی که می‌بیند دستکش‌های چرمی هستند و صورتی که داخل کلاه ایمنی است وحشت حاضر در چشمان مرد در چشمان خودش همان منعکس می شود بعد انفجاری صورت میگیرد و چیزی باقی نمیه